فصل 15 صدای زنگ را می شنیدم اما این صدا ربطی به من نداشت این صدا را بارها شنیده بودم ولی هیچ وقت مجبور نبودم واکنشی در برابرش نشان دهم در خانه ما خدمتکاران با شنیدن زنگ در را باز میکردند. صدای زنگ را در دکان درکم هم بارها شنیده بودم ولی هیچ وقت از جایم بلند نشده بودم در کل در یک پانسیون زندگی می کردیم آنجا هم فقط صدای زنگ تلفن به گوش می رسید صدای زنگ را شنیدم ولی آن را جدی نگرفتم برایم غریبه بود در این آپارتمان تنها دو بار صدای زنگ را شنیده بودم یک بار وقتی پسرک برای من شیر آورده بود و بار دیگر وقتی تصفنر برای ماری روز زرد فرستاده بود وقتی گلها را آوردن در تخت خواب بودم ماری به اتاق آمد، گل را به من نشان داد و سرش را با دل باختگی میان گل فرو کرد و بو کشید. فکر کردم گل را برای من فرستاده اند گاهی زنان طرفدارم برایم به هتل گل میفرستادند. به ماری گفتم رسهای قشنگی اند مال تو صحنه ناخوشایندی بود به من نگاه کرد و گفت آنها را برای من فرستاده از خجالت سرخ شدم. یادم آمد که من هیچ وقت برای ماری گل نفرستادم البته امات گل را که روی صحنه به من می و بیشتر مواقع خودم پولشان را داده بودم برای ماری می آوردم ولی هیچ وقت برای او از گل فروشی گل نخریده بودم گفتم گل را کی فرستاده گفته صبحنر گفتم لعنتی این کاریانی چه؟ به یاد دست توی دست انداختن شون افتادم. ماری سرخ شد و گفت و چرا نباید برایم گل بفرستد گفتم این سال را باید این طور مطرح کرد چرا باید برای تو گل بفرستد گفت هم دیگر را خیلی وقت است میشناسیم. شاید هم دوستم داشته باشد گفتم باشد دوستت داشته باشد ولی فرستادن این همه گل گران قیمت اقراغامیز و بیمزه است ماری که دلخور شده بود از اتاق بیرون رفت وقتی پسرک شیرفروش زد. ما در اتاق نشیمن نشسته بودیم ماری بیرون رفت در را باز کرد و به او پول داد ولی مهمان فقط یک بار به آپارتمان آمد لئو قبل از اینکه کاتولیک بشود ولی او زنگ نزد با ماری آمد صدای زنگ عجیب و غریب بود محجوبانه و سمج ترسیده بودم که نکند مونیکا به هر بحانه ای از طرف زومرویلد آمده باشد و بار دیگر به سرعت دو چهار عقده نیبلونگنی شدم با دمپایه های خیز به طرف راه رو دویدم و در حالی که دنبال دکمه می که باید آن را فشار بدهم، یادم آمد مونیکا کلید خانه را دارد، به دکمه را پیدا کردم و آن را فشار دادم، از پایین صدایی شبیه وزوز زنبوری که به شیشه بخورد بگوشم گوشم خورد، به راه رو رفتم و کنار آسانسور ایستادم آسانسور به راه افتاد و چراغ طبقات اول و دوم به ترتیب روشن شد با ناراحتی به شماره طبقات و خاموش و روشن شدنشان خیره شده بودم که ناگهان متوجه شدم یک نفر کنارم ایستاده است یک که خوردم برگشتم و در کنار خود زنی زیبا بور و لاغرندام را با چشمان خاکستری درخشان و مهربان دیدم فقط پوستش بیش از حد قرمز بود لبخند زدم او هم لبخند زد و گفت، شما باید آقای شنیر باشید، من گرپسل همسایه هم شما، خوشحالم که برای یک بارم شده شما را از نزدیک میبینم، گفتم منم خوشحالم، واقعا از دیدنش خوشحال بودم، خانم گرپسل با وجود پوست قرمزش خیلی زیبا بود، زیر بقلش یک روزنامه بود، صدای بن متوجه نگاه هم شد سرخ شد و گفت به این حرفها اهمیت ندهید گفتم اگر این سگر رزر را ببینم به او سیلی میزنم اگر بدانید چه موجود پست و چاپلو است، او سر یک بطری عرق سرم کلاه گذاشته خندید و گفت من و شوهرم خوشحال میشویم اگر بتوانیم یک بار حق همسایگی را به جا بیاوریم زیاد اینجا میمانید گفتم بله گفت پس اگر اجازه دهید یک روز زنگ آپارتمانتان را بزنم و شما را دعوت کنم راستی در آپارتمان شما هم همه چیز به رنگ مس است و در جواب خودش گفت معلوم است رنگ مسی نشانه طبقه پنجم است آسانسور در طبقه سوم بیشتر معطر شد حالا چهار قرمز شد بعد پنج در را باز کردم و از تعجب یک قدم پس رفتم. پدرم از آسانسور بیرون آمد. در را برای خانم گرفتسر که میخواست سوار شود باز نگه داشت و رویش را به من کرد گفتم خدای من پدر. اینجا چه کار میکنید؟ من هیچگاه به او پدر نگفته بودم. همیشه به او پاپا میگفتم گفت: هانس و ناشیانه سعی کرد بغلم کند. از مقابل او رد شدم و به آپارتمان رفتم. کلاه و پالتویش را گرفتم. در اتاق نشیمن را باز کردم و به مبل اشاره کردم. او با حالتی رسمی روی مبل نشست. ب... ب... هر دو دستپاچه بودیم. نمیدونستیم چه کنیم. به نظرم دستپاتچگی تنها راه تفاهم میان والدین و بچه‌است. شاید برخوردم با او و کلمهی پدر برایش زیادی با احساس بود و دست پاچگیاش را بیشتر کرده بود پدرم روی یکی از مبلهای مسی رنگ نشسته بود و در حالی که سرش را تکان میداد به من نگاه میکرد شاید دمپایی ها و جوراوب خیص و حولی حمام بیش از حد بلند و سرخی که به تن داشتم حیرانش کرده بود قد پدرم بلند نیست ظریف است و به ظاهرش زیاد توجه نمی کند. اگر با این سر سرواز در میزه گرد اقتصادی تلویزیون شرکت کند، بیشتر جلب توجه خواهد کرد. او با مهربانی شعور و آگاهی که از خود نشان داده توانسته بدل به ستاره بیچون و چرای برمومه تلویزیونی شود. او عنوان یک ستاره تلویزیونی شهرت و محبوبیت بیشتری به دست آورده تا سهامدار معادن زغال سنگ شنیر، او از غلدری به هر شکلی که باشد نفرت دارد وقتی کسی را با این سر میبینید می‌بینید انتظار دارید که سیگار برگ بکشد البته نه سیگار برگ قطور بلکه سیگار برگی نازک و ملایم به هر حال تاثیر سیگار کشیدن او زیاد است و یک دار هفتاد ساله این را نشانه پیشرفت و نوگرایی می‌داند حالا میفهمم چرا هر جا صحبت پول است او را میفرستند او نه تنها ظاهری خیرخواه دارد که باطنش هم همینطور است سیگاری تارفش کردم و آتش را به سمتش گرفتم وقتی برای روشن کردن سیگار خم شد گفت درباره دلقک ها اطلاعات زیادی ندارم ولی اینکه در قهوه همم کنند برایم هم تازگی دارد او میتواند خیلی بامزه باشد گفتم پدر من توی قهوه حمام کنم میخواستم برای خودم قهوه بریزم که قهوه روی پایم ریخت. باید در این جمله او را پاپا پا صدا می کردم. ولی دیگر دیر شده بود گفتم چیزی می نوشی لبخند زد نگاه مشکوکی به من کرد و پرسید چه داریم؟ به آشپزخانه رفتم در یخچال به آشپزخانه رفتم در یخچال کنیاک بود چند بطری آب معدنی لیموناد و یک بطری شراب قرمز از هر کدام یک بطری برداشتم به اتاق نشیمن بردم و آنها را روی میز جلوی پدرم به صف کردم. اینکش را از جیب بیرون آورد و چسب بطری ها را نگاه کرد و در حالی که سرش را تکان می داد، اول از همه بطری کنیاک را کنار زد من که می دانستم کنیاک دوست دارد دلخور گفتم به نظر می آمد مارک خوبی باشد گفت نالی است ولی کنیاک اگر بیش از اندازه سرد شود دیگر به درد نمی خورد گفتم خداوند مگر کنیاک را نواید توی یخچال گذاشت از بالای عینکش طوری به من نگاه کرد که گویی دوچار انحراف جنسی شده هم او به شکلی افراتی خوش است توانای این را دارد که هر روز صبح نان توست را سه چهار بار به آشپزخانه برگرداند تا آنا نان را به میزانی که دوست دارد برشته کند این مبارزهای پنانی است که در سکوتی کامل هر روز صبح تکرار می شود زیرا آنا نان توست را حماقت انگل سکسونی می داند. پدر با لحنی تمسخرآمیز خورا میز گفت کنیاک توی یخچان تو واقعا نمیدانستی یا همینطوری میگویی؟ آدم واقعا نمیدانه تو که جدی هستی یا که شوخی میکنی؟ گفتم نمیدانستم نگاه کنجکاوش را به من دوخت و لبخند زد. به نظرم حرفم را باور کرده بود گفت مرا بگو که این همه پول خرج تربیت تو کردم؟ خیال کردم قصد شوخی دارد اما وقتی به کلمه پول رسید فهمیدم موضوع جدی است در حالی که سرش را تکان میداد لیموناد و شراب قرمز را هم کنار زد و گفت با این اوزا و احوال به نظر میآید که آب معدنی مطمئنتر باشد از بوفه دو گیلاس آوردم و در بطری آب معدنی را باز کردم دستکم این به نظرش درست آمد چون وقتی در بطری را باز می کردم با سر کارم را تایید کرد گفتم اشکالی ندارد با هوله‌ی حمام پیشد بمانم گفت، چرا؟ ناراحتم می کند، خواهش میکنم لباس حسابی بپوش، ریخت و قیافت و بوی قهوهی که می دهی، وزارم مسخره کرده و تناسبی با صحبتهای جدی که میخواهم بکنم ندارد از آن گذشته، من از میخوام که اینطور بی پرده حرف میزنم. همانطور که خودت می از شلختگی و هر شکلی که باشد بیزارم. گفتم، این شلختگی نیست، نشانه استراحت است گفت نمیدانم چند بار در زندگی به حرفم گوش کرده ای. البته حالا هم مجبور نیستی گوش کنی. من فقط از تو خواهش می کنم لطفی در حق من بکنی. تعجب کردم. پیش از این پدرم مردی خجالتی بود و در بیشتر مواقع ساکت. او در تلویزیون یاد گرفته بود چطور بحث کند و دلیل بیاورد آنم به شکلی که انسان را قانع کند. من هم خسته تر از آن بودم که در مقابل این حالت او مقاومت کنم. به حمام رفتم جوراپای را که از قهوه خیس بود بیرون آوردم، پاهایم را خشک کردم، پیراهن شلوار و کت بتن کردم و با پای برهنه به آشپزخانه دویدم و لوبیاهای گرم کرده را توی بشقاب ریختم و تخم های اصلی را روی آن شکستم. ته پوست تخم مرغ را با قاشق تراشیدم، یک برش نان و یک قاشق برداشتم و به اتاق نشیمن رفتم. پدرم جوری به بشقاب نگاه کرد که در بهترین حالت مخلوطی از تعجب و نفرت بود گفتم مذارت می خواهم معذرت میخوام. از ساعت نه صبح تا حالا چیزی نخوردم و هرچند می‌دونم از این که از حال بروم و جلوی پایت به زمین بیفتم ناراحت نمیشوی ولی باید چیزی بخورم خنده دردالودی کرد سرش را تکان داد آهی کشید و گفت مم. حرفی ندارم، ولی باید بدانی که سفیده ی نپخته ی تخم مرغ برای سلامتی خوب نیست گفتم، روی آن یک سیب میخورم. خورم، لوبیه ها رو با تخم مرغ قاطی کردم، گازی به نان زدم و یک قاشق از مخلوطی که خیلی هم خوشمزه بود به دهان گذاشتم گفت، دستکم سس گوجه فرنگی رویش می ریختی، گفتم، سس ندارم، با عجله میخوردم و با تمام تلاشی که برای بی صدا خوردن می صداهایی از دهانم بیرون می آمد. دلش را آشوب کرد و با وجود تلاشی که کرد نتوانست از بیان نفرتش نسبت به صداهای طبیعی دهانم خودداری کند. ناچار بلند شدم و به آشپسخانه رفتم و باقی غذا را در حالی که خود را در آینه بالای یخچال نگاه می کردم، ایستاده خوردم. در این چند هفته مهمترین تمرینی که یک دلغک باید انجام دهد یعنی تمرین عضلات صورت را انجام ندادم، دلغکی که باید با حرکت صورتش تماشاگر را جذب کند باید دائم به عضلات صورتش تمرین بدهد پیش از این وقتی شروع به تمرین صورت می کردم، مقابل آینه می استادم و زبانم را بیرون می آوردم تا احساس بیگانگی را از بیندمم و به خودم نزدیکتر شوم. بعدها این کار را کنار گذاشتم و بدون استفاده از این حقه روزی نیم ساعت به صورت خودم نگاه می کردم و چون گرایشی به خود شیفتگی ندارم اغلب به سرحد جنون می رسیدم و فراموش می کردم که صورتی که در آینه می بینم صورت خودم است وقتی تمرین تمام می شد آینه را برمیگرداندم و وقتی در طی روز بر حسب اتفاق چشمم به آینه می افتاد، جا می خوردم. مردی که در آینه ی یا حمام بود غریبه بود مرد غریبه که او را نمیشناختم و نمیدانستم جدیست یا مسخره یک شبه بینی دراز رنگ پریده بود. بعد تا اونجا که می به سرعت خودم را به ماری می رساندم که خودم را در چشمان او ببینم و از وجود خودم مطمئن شوم. از وقتی او رفته است دیگر نمیتوانم تمرین صورت کنم. می ترسم دیوانه شوم؟ وقتی تمرین تمام می شد آنقدر به ماری نزدیک می شدم که در چشمانش کوچک و در هم بر هم می شدم اما خودم را میشناختم، من همان کسی بودم که در آینه از او میترسیدم. چطور می توانستم به تصر حالی کنم که بدون ماری دیگر نمیتوانم تمرین صورت کنم. تماشا کردن خودم توی آینه آین انگام غذا خوردن غمناک بود. ولی دیگر ترسناک نبود. به قاشقی که به دهان می‌بردم به آثار سفیده و زرد تخم مرغ و لوبیاهای توی بشقاه و برش نانی که کوچک و کوچکتر می‌شد نگاه می‌کردم آینه واقعیت تکان دهنده ای را تایید می‌کرد چیزی مثل بشقاهی که غذایش را تا ته خورده باشند مثل تکه نانی که کوچک و کوچکتر می‌شد و مثل دهانی که کثیف شده بود و من با آستین کتم پاکش می‌کردم من تمرین نمی کردم. کسی آنجا نبود که مرا از آین بیرون بیاورد آهسته به اتاق نشی من برگشتم پدرم گفت خیلی تند میخوریم عجله میکنی، حالا دیگر بشین نوشیدنی میخواهی؟ گفتم نه نه نه نه قبل از آمدنت میخواستم قهوه درست کنم که همونطور که میدانی ریخت پرسید میخوایی برایت درست کنم؟ مگر بلدی گفت نه از از من تعریف میکنن ولش کن کمی آب معدنی میخورم زیاد مهم نیست گفت بله دوست دارم که برایت قهوه درست کنم گفتم نه نه ممنون وضع آشپسخانه وحشتناک است حالا آدم از دیدنش به هم میخورد زمین دریاچه ای از قهوه و همه جا پر از قوطی خالی کنسرو و پوست تخم مرغ است گفت باشد هر طور تو بخای پیدا بود که رنجیده است برایم آب ریخت و پاکت سیگار را جلویم گرفت. یکی برداشتم. سیگار را روشن کردم و مشغول کشیدن شدم. دلم به آلش سوخت. شاید او را بشقاب پر از لوبیا از کوره به در کرده بودم. او مطمئن انتظار داشت مطابق تصویر او از خانه ی هنرمندان زندگی کنم، در هم برهمی حساب شده و موفق و انواع و اقسام چیزهای مدرن که به در و دیوارا ویزان است. ولی خانه بر حسب اتفاق بدون سبک و حساب تزین شده بود، تقریبا به شکل خورد برجوها ها، متوجه شدم آمی بودن خانه خاطرش را آزرده، گنج ها و قفسه ها را رو از روی کاتالوگ سفارش داده بودیم و تصاویر آویخته بر دیوار هایی بودند که تنها دوتایشان آبستره بودند و چیز خاصی هم برای گفتن نداشتند. تنها چیز زیبا دو نقاشی آبرنگ از مونیکا زیلوز بود که بالای کمد لباس آویزان کرده بودیم. دو تابلو از منظر راین با رنگ های خاکستری تیره و خطوط سفید محوی که به سختی به چشم میآد. چند چیز زیبای دیگر هم که داشتیم مثل سندلی ها چند تا گلدان و میز چرخ داره مخصوص سرو چای همه را ماری خریده بود پدر مادم است که احتیاج به محیطی خوشایند دارد و محیط آپارتمان ما او را حسابی می کرد بالاخره وقتی سیگار دوم را روشن می کردیم بدون اینکه که کلمهی بین من رد و بدر شده باشد پرسیدم مادر گفت اینجایم؟ گفت بله چرا دست سر مادرت بر نمیداری گفتم اگر با لحن یک عضو کمیته خودش رو معرفی نمیکرد، این مسائل پیش نمی آمد به آرامی پرسید تو مخالفتی با این کمیته داری گفتم نه نه بسیار خوب است که می‌خواهند نژادهای مختلف رو با هم آشتی دهند اما عقیده من درباره نژاد با کمیته متفاوت است برای نمونه نژاد سیاه را که مسئله روز هم شده در نظر بگیریم میخواستم سیاهی را که خوب میشناسم به مادر معرفی کنم وقتی آدم فکر میکنند سیاه ها چند صد نژاد دارند میبیند که کمیته هرگز بیکار نخواهد شد یا کولی ها خوب است مادر چند نفر از آنها را به چای دعوت کند همینطور از توی خیابان دعوت کند میبینی که کمیته او هنوز وظایف سنگینی بردوش دارد گفت من نیامدم در این باره با تو صحبت کنم چیزی نگفتم به من نگاه کرد و آهسته گفت میخواستم با تو در پول صحبت کنم به سکوتم ادامه دادم گوان میکنم در وضعیت بدی باشیم حرف بزن گفتم کاش <تصح> قذیه به وضع بد ختم شد ممکن است یک سال تمام نتوانم روی صحنه بروم ببین پاچه شلوارم رو بالا کشیدم و زانوی ورم کردم رو نشانش دادم و دوباره آن را پایین کشیدم و با انگشت دست راست به طرف چپ سینم اشاره کردم و گفتم و اینجا گفت به خدای من قلب گفتم بله قلب گفت نه. به درومرت می میکنم و خواهش میکنم نگاهی به قلبت بی اندازت. او بهتری متخصص است که داریم گفتم سوی تفاهم شد من به درومرت احتیاج ندارم گفت خدات گفتی قلبت نراحت است گفتم. شاید بهتر بود میگفتم روان احساس یا دل ولی قلب به نظرم مناسب تر آمد با لحنی خوش گفت آه. منظورت آن داستان است مطمئنن زومرویل در باشگاه مردان سر بازی اسکات میان خوردن یک تکه گوشت خرگوش و آب جوه زمین زدن یک برگ دل آن داستان را برایش گفته است بلند شد و شروع کرد به این سو و آن سو رفتن بعد پشت مبل ایستاد به مبر تکیه داد و مراورانداز کرد گفت احمقانه است اگر برایت حرفهای گنده گنده بزنم ولی میدانی تو چه کم داری آن خصلتی که انسان را بدل به مرد میکند تحمل و درک شرایط گفتم این حرف رو امروز یکبار دیگر هم شنیدم گفت پس برای بار سوم هم بشنو تحمل کم و قانع باش با خستگی گفتم تو خدا بس کن گفت تو میدانی وقتی لئو پیش من آمد و گفت میخواهد کاتولیک شود چه حالی به من دست داد برای من مانند مرگ هنریت درد بود اگر میگفت میخواهد کمونیست شود اینقدر زجره میکشیدم تصور جوانی که در خیال خامش دم از ادالت اجتماعی و این حرفها بزند برایم قابل فهم است ولی این... دستش را رو روی لبه مبل گذاشت و سرش را تکان داد. این؟ نه نه نه نه نه. برایم قابل فهم نیست. به نظر می موضوع برایش جدی است. رنگش کاملا پریده بود و پیرتر از آن چه بود به نظر می آمد. گفتم پدر بنشین و یک لیوان کنیاک بخور. نشست. به بطری کنیاک اشاره کرد. از بوفه یک گیلاس آوردم و برایش کنیاک ریختم. گیلاس را برداشت و نوشید بدون اینکه به سلامتی بگوید و یا تشکر کند گفت تو این را درک نمی کنیم. گفتم نه گفت من هر وقت جوانی می بینم که به این مسائل اعتقاد دارد ترس برهم هم دارد تغییر مذهب او مرا به شکل وحشتناکی تکان داد ولی این موضوع را برای خودم حل کردم تحمل کردن و درک شرایط هم. چرا اینطور به من نگاه میکنی؟ گفتم میخواهم چیزی درباره خودت بگویم وقتی تو را در تلویزیون میدیدم فکر میکردم تو یک هنرپیشه بزرگ هستی حتی کمی هم دلغهک بدگمان و دلخور به من نگاه کرد سری گفتم باور کن پاپا عالی بودی؟ خوشحال از اینکه دوباره کلمه پاپا را بیان کردم ادامه دادم و به داشتن پدری مثل تو افتخار میکردم گفت مرا وادار به اجرای نقش کردند گفتم نقشت را خوب بازی کردی وقتی خودت را بازی میکنی نقش خوب از آب در میآید جدی گفت من بازی نمی کنم. نیازی به این کار ندارم گفتم پس بدا به حال دشمنانت براش شفته گفت من دشمن ندارم گفتم در این صورت باز هم بدا به حال دشمنانت نگاهی از سر به من انداخت خندید و گفت <تصفيق> ولی من جدا آنها را دشمن خودم نمیدانم گفتم پس بدبختتر از آنند که من تصور میکردم آن جمعی که دائم درباره پول با هم صحبت میکنید میدانند که تو همیشه مهمترین چیز را به سکوت برگزار میکنی یا قبل از اینکه روی تصویر ظاهر شوید قرار و مدارتان را میگذارید. برای خودش کنیاک ریخت نگاه پرسشگری به من انداخت و گفت م... میخواستم درباره باره آیندت با تو صحبت کنم گفتم سب کن دوست دارم بدانم چطور این کار را میکنید شماها همیشه از درصد صحبت میکنید ده، بیست، پنج، پنجاه درصد ولی هیچ وقت نمیگوید چند درصد از چه مبلغ همونطور که به من نگاه میکرد گیلاس کنیاکش را بلند کرد و نوشید حالت احمقانهی پیدا کرده بود گفتم منظورم این است که هرچند من حساب کتابم خوب نیست ولی میدانم که صد درصد از نیمفنینگ نیمفنینگ است. در حالی که پنج درصد از یک میلیارد پنجاه میلیون. میفهمی چه بگویم؟ می گفت خدای من تو این همه وقت زیادی داری که تلویزیون تماشا کنی. گفتم بله، از زمان آن داستان طوره که خودت اسمش را گذاشته ای زیاد تلویزیون تماشا می کنم مرا حسابی خالی می کند کاملا خالی از طرفی وقتی آدم پدرش را هم سه سال یک بار ببیند خوشحال می شود که گاهی توی تلویزیون تماشایش کند جایی توی یک کافه در نیمه تاریک موقع آبجو خوردن گاهی واقعا به تو افتخار کنم که چطور با استادی تمام مانع سؤال مردم درباره مبلغ میشوی باخم سردی گفت. اشتباه میکنی. من جلوی چنین سؤالی را نمیگیرم. گفتم دشمن نداشتن خسته کننده نیست؟ بلند شد و نگاه خشمگینش را به من دوخت. من هم بلند شدم. هر دو پشت مبل‌هایمان ایستادیم و دستها را روی لبه‌ی آن گذاشتیم. خندیدم و گفتم <تصفيق> به عنوان دلغک طبیعی است که شکلهای جدید پانتومیم توجه را جلب می کند یک بار که توی پستوی یک کافه نشسته بودم ساکت ماندم و به حرف‌های مردم گوش دادم عالی بود مردم سعی داشتند هنر را در سیاست پرداخت دست و اقتصاد وارد کنند حیف که نمایش جلسه یه حیعت مدیرم را ندیدی گفت یک چیز می‌خوام به تو بگویم من با گنهولم درباره تو حرف زدم و خواهش کردم چند تا از برنامه های تو را ببیند و نظر کارشناسان خودش را به من بدهد. بی اختیار خمیازه کشیدم. بی ادبی بود ولی دست خودم نبود. می دانستم چقدر ناخوشایند است. شب قبل خوب نخوابیده بودم و روز بدی را پشت سر گذاشته بودم. وقتی یک نفر پدرش را پس از سه سال برای اولین بار میبیند و برای اولین بار در زندگی با او جدی صحبت می کند خازه کشیدن از آن دست چیزهایی است که جایی ندارد هیجان زده و خسته بودم و متاسف از اینکه خمیازه کشیدم اسم گنه مثل قرص خواب آور رویم اثر گذاشته بود آدمهایی مثل پدرم باید همیشه بهترین هارا را داشته باشند. بهترین متخصص قلب در دنیا درومرد، بهترین منتقد تئاتر آلمان گنه هولم، بهترین خیاط بهترین شامپاین، بهترین هتل بهترین نویسنده، آه خسته کننده است، خمیازه همون قدر بلند بود که از دهانم گرفت و علم به اینکه که گنه هولم هم هم تأثیری در این نداشت که حتی آوردن اسمش مرا خسته و بیحسله نکند، همجنسگره ها می توانند خوشمشرب باشند اما آدمهای خوشمشرب به ویژه اگر هنر کمدی باشند که سلم می کنند تنها ها علم هم ها که هنر کمدی هم بود او در بیشتر مهمانیهای های مادرم شرکت می کرد و خودش را آن قدر به آدم می چسباند که بوی دهانش به مشام می رسید و آدم نخواسته با آخرین غذایی که خورده بود شریک می شد آخرین باری که او را دیدم چهار سال قبل بود و بوی سالاد سیب زمینی میداد و با توجه به این بو جلیقه سرخ رنگ اسخف معابانه و سیبیل مفیست و مفیستوفلیسیاش عجیب و غریب و نامعقول به نظر نمیرسید او موجود شوخ طبعی بود و چون همه این را می دانستند مجبور بود همیشه خوشمزگی کند. موجودی بقایت خسته کننده. وقتی مطمئن شدم که هجوم خمیازه را پشت سر گذاشتم گفتم معذرت میخوام گفت گنهول چه میگوید؟ پدرم دلخور شده بود او همیشه وقتی آدم بی کند همین حال را پیدا می کند خمیازه من به شکلی ذهنی که کاملا عینی ناراحتش کرده بود همانطور که برای لوبیا سرش را تکان داده بود سرش را تکان داده و گفت گنه من پیشرفت تو را با علاقه دنبال می کند. او نسبت به تو نظر مثبت دارد گفتم هم جنسگیره ها نامید نمی شوند. آنها مردمان پیگیری هستند پدرم به تندی گفت، از این حرفا نزن، خوشحال باش که چنین طرفدار صاحب نفوزی پشت سرت داری. گفتم، من واقعا خوشبختم، گفت، او ایرادهای زیادی به نمایش هایی که اجرا کرده ای گرفت. او اعتقاد دارد با اینکه تو استعداد دلغکبازی خوبی داری ولی باید دلغکبازیت را کم و تنز نمایش هایت را بیشتر کنی. او متقده است حیف توست که دلغت شوی و کلید موفقیت تو را در حرکات پانتومیم میداند اصلا به حرفایم گوش می دهی؟ صدایش لحظه به لحظه گوش خراشتر می شد گفتم بله من تک تک این کلمات سرشار از هوشمندی و مطابق با واقعیت را گوش میدهم و از اینکه چشم چشمهایم را بستم ناراحت نشو وقتی از گنه نقل و قول می چشمانم را بسته بودم این کار آرامش بخش بود و مرا از دیدن کمد قهوه رنگی که در پشت سر پدرم کنار دیوار قرار داشت می میکرد. این کمد وحشتناک با این رنگ قهوهی سیر، دستگیرهای سیاه و خط زرد روشن لبه بالایش مرا یاد مدرسه میانداخت. این کمود را ماری از خانه آورده بود. آهسته گفتم خواهش میکنم ادامه بده. خسته بودم و دلم درد میکرد. سردرد هم داشتم و آنقدر پشت مبل ایستاده بودم که ورم زانویم بیشتر شده بود از پشت پلک های بستم چهرم را آنطور که از هزاران ساعت تمرین در آینه می شناختم کاملاً کاملا بی حرکت و پودر مالیده چون برف حتی مژه هم نمی زدم هم بی حرکت بود فقط چشم ها چون خرگوشی ترسیده این طرف و آن طرف می دوید. تمام اینها برای ایجاد آن حالتی بود که منتقدینی چون گنه هولم آن را توانایی عجیب در به نمایش درآوردن آوردن مالی خوریای حیوانی می نامند. من مرده بودم در این چهره زندانی شده بودم و امکان اینکه با دیدن چهرم در چشمان ماری خود را نجات دهم نداشتم گفتم ادامه بده گفت او به من توصیه کرد تو را پیش یکی از بهترین معلمین بفرستم برای یک سال دو سال یا شش ماه گناه عقیده دارد که تو باید فکرت را متمرکز کنی و آنقدر تمرین کنی تا دوباره بتوانی قدرت بازیگری و حالت طبیعیت را به دست بیاوری فقط تمرین تمرین تمرین هنوز گوش میدهی؟ خدا روشتو صدایش آرام تر شده بود گفتم بله گفت من آزرم خرج این کار را بدهم احساس کردم زانویم مثل کلم گرد و بزرگ شده بدون اینکه چشم باز کنم کورمال کورمال روی مبل نشستم مثل یک کور با دست روی میز به دنبال سیگار گشتم پدرم وحشت زده فریاد کشید من چنان با مهارت نقش کور را بازی میکنم که بیننده باور میکند کور هستم به نظر خودم هم رسید که کورم شاید کور میموندم من نقش کور را بازی نمیکردم نقش کسی را بازی میکردم که یک بار بالاخره وقتی سیگار را بر لب گذاشتم آتش فندک پدرم را حس کردم همینطور حس کردم که او چگونه میلرزد. با صدایی وحشت زده پرسید پذرم مریضی؟ آرام گفتم بله پوکی به سیگار زدم دود را فرو بردم و گفتم سخت مریضم، ولی کور نیستم دل درد و سر درد و زان و درد دارم و علاوه بر آن دوچار افکار عجیب و مالی خوریایی هم هستم ولی بدتر از همه این درد است که میدانم نود و پنج درصد حرفهای گنهلم درست است و میدانم چه چیزهای دیگری به شما گفته او راجع به هم حرف زده پدرم گفت بله گفتم نگفت من باید روحم رو از دست بدم که بتوانم دوباره آن را به دست بیاورم این را نگفت پدرم گفت چرا تو از کجا میدانی گفتم خدای من من تئوری های او را خوب میشناسم و میدانم آنها را از کجا آورده و سرهم کرده است ولی نمیخواهم روحم را از دست بدهم من میخواهم آن را دوباره به دست بیاورم پدر گفت مگر آن را از دست دادی گفتم بله گفت روحت هم... الان کجاست گفتم در روم چشمانم را باز کردم و خندیدم بدرم واقعا از ترس رنگ و رویش پریده بود او پیر شده خندهاش نشان میداد که باری از دوشش برداشته شده است ولی عصبانی بود گفت احمق جان همش بازی بود گفتم متاسفانه نه کامل بود و نه خوب اگر گنههلم اینجا بود میگفت هنوز خیلی ناتورالیست هستی و البته حق با او بود در بیشتر مواقع حق با هم هاست آنها توانایی زیادی در همدردی و دگریابی دارند البته نه همیشه ولی گنههلم این حسها را دارد پدرم گفت احمق جان تو مرا گول زدی گفتم نه نه نه من نتوانستم مانند یک کور واقعی گولت بزنم باور کن تنها کورمال کورمال راه رفتن و با دست پی چیزی گشتن مشخصه کورها نیست بعضی از کورها با وجود اینکه کور هستن ادای کوری را در میآورند من میتوانم از اینجا تا نزدیک در طوری مانند یک کور واقعی راه بروم که از فرط احساس همدردی فریاد بزنی و به دنبال طبیب بدوی به دنبال بهترین جراح دنیا فراتسر میخای این را بکنم از جا برخواستم با ناراحتی گفت خواهش میکنم دستبردار و من دوباره نشستم گفتم خواهش میکنم تو هم بنشین آنجا استادنت عصبیه میکند نشست کمی آب معدنی توی گیلاسش ریخت و آشفته به من خیره شد گفت آ آدم از کار تو سر در آورد به من یک جواب روشن بده من خرج تحصیلت را می دهم برای مهم نیست کجا می خواهی بروی لندن، پاریس، بروکسل برای من بهترین آنها مناسب است با خستگی گفتم نه، این کار غلط ترین کار ممکن است تحصیل سودی برای من ندارد من باید کار کنم وقتی سیزده چهارده سال داشتم تا بیست و یک سالگی به قدر کافی چیز یاد گرفتم ولی شماها متوجه آن نشدید و اگر حالا گنه هولم فکر می کند من باید تحصیل کنم از آن چه تصور می کردم است پدرم در رد حرفایم گفت او در این رشته متخصص است و بهترین کسی است که می شناسم گفتم بله او اینجا بهترین متخصص است ولی او فقط از تئاتر تراژدی، کمدی و پانتومیم سردر در می آورد تا به حال دقت کرده ای که وقتی خودش ناگهان با پیراهن بنفش و پاپیون ابریشمی سیاه سر و پیدا می شود حرکات مسخرش چقدر توی ذوق می زند هر آماتوری از دیدن حرکات او شرمنده می شود این که منتقدین خود قابل نقدند چیز بدی نیست ولی مشکل اینجاست که آنها هیچ وقت کار خودشان را نقد نمی کنن. در اینکه او یک متخصص است شکی نیست ولی اگر فکر میکند من بعد از شش سال کار روی صحنه باید دوباره درس بخوانم باید بگویم که عقلش را از دست داده و مزخرف میگوید پدرم پرسید پس این پول را رد میکنی اثر کمی از آسودگی خیال در صدایش بود که مرا نسبت به او بدگمان کرد گفتم چرا به پول احتیاج دارم گفت میخوای چه بکنی میخوای با این واس کار کنی پرسیدم چه واسه با گفت چطور بگویم خودت که روزنامه ها را رو میخوانی گفتم روزنامه ها؟ چه نوشتند؟ من از سه ماه قبل فقط در شهرستان ها نمویش دادم گفت من تمام روزنامه ها را رو تهیه کردم و با گنه هولم آنها را بررسی کردیم گفتم ای لعنتی برای این کار چقدر به او پول دادی؟ صورتش سرخ شد گفت این بحث را پیش نکش بالاخره می چه کنی؟ گفتم، تمرین کار شش ماه یک سال درست نمیدانم گفت کجا؟ گفتم معلوم است دیگر همینجا به زحمت توانست وحشتش را مخفی کند. گفتم نه مزاحمتان میشوم و نه به شما اهانت می کنم حتی به دوره هایتان هم نمیآیم سرخ شد. من چند بار به دوره هایشان رفته بودم خیلی رسمی ککتل نوشیده بودم زیتون خورده بودم و بعد از صرف چای هنگام رفتن بدون مخفی کاری سیگارها را توی جیبم گذاشته بودم. نوکرها آن صحنه را دیده و از شدت نفرت رویشان را برگردانده بودند. پدرم فقط آهی از سر تعجب کشید و روی مبل نیم خیز شد. دلش میخواست بلند شود و کنار پنجره برود ولی فقط چشمانش را پایین انداخت و گفت ترجیح میدهم راه مطمئنتر را انتخاب کنی. همان رایی که گنه هوم پیشنهاد کرده. پول دادن برای یک کار نامطمئن برای مشکل است. خودت پسانداز نداری؟ این سالها باید خوب پول درآورده باشی. گفتم <تصفح> یک فینینگ هم پس نکردم. تمام ثروتم همین یک مارک است. سکه را از جیبم بیرون آوردم و به اون نشان دادم. خم شده و مثل اینکه به هشری عجیب و غریب نگاه می کند به سکه خیره شد. گفت برای من مشکل از حرفت را باور کنم. دستکم تو را خرج بار نیاوردم. ماهیانه چه مبلغی نیاز داری؟ قلبم به شدت میتپید باور نمیکردم چنین بیپرده به من پیشنهاده کمک کند سباک سنگین کردم برای گذراندن اموراتم پول زیادی نمیخواستم اما به این فکر نکرده بودم که نیازم در ما چقدر است برق تلفن و هزینه زندگی از شدت هیجان عرق کردم گفتم قبل از همه هم یه تشک لاستیکی احتیاج دارم به بزرگی این اتاق پنج در هفت این را میتوانی از کارخانه لاستیکسازی راین ارزانتر بخری لبخند زنان گفت باشد آن را به تو هدیه می کنم گفتی پنج در هفت باشد ولی گنه عقیده دارد تو نباید خودت را با اکروبات بدنام کنی گفتم پاپا پا خیال این کار را ندارم غیر از تشک فکر کنم به هزار مارک در ماه احتیاج داشته باشم گفت هزار مارک بلند شد واقعا ترسیده بود و لبانش میلرزید گفتم خودت چه نظری داری؟ من واقعا نمیدانستم او چقدر پول دارد. یک سال تمام ماهی هزار مارک را می توانستم حساب کنم. دوازده هزار مارک میشد و چنین مبلغی پدرم را نمیکشت او واقعا میلیونر بود. پدر ماری یک بار با محاسبات دقیق برایم ثابت کرد که میلیونر بودن پدرم صحت دارد. یادم نمیآد چطور حساب کرده بود. میدانستم که او همه جا سهام داشت و دستش توی کار بود. حتی توی کارخانه گرد همماام. آرام پشت مبلش این طرف و آن طرف میرفت و لبهایش را می جنبند انگار داشت چیزی را حساب می کرد شاید هم واقعا داشت حساب می کرد هرچه بود زیاد طولش داد یادم <تصفح> آمد وقتی با ماری از بن می رفتیم تا چه حد خصاست کردند کمی پس از رفتنم پدرم به من نوشت که به علل اخلاقی از هر گونه کمک مالی به من خودداری میکند و از من توقع دارد که با دسترنج خود خودم و دختر بدبخت و سر به زیری را که از راه به در کردم اداره کنم. تا آنجا که می او همیشه برای درکم پیر احترام زیادی قائل بود. چه به عنوان دشمن و چه یک انسان. به همین دلیل کاری که کردم را یک رسوایی بزرگ میدانست. ما در کل در محله ارنفرد در یک پانسیون زندگی می کردیم. 700 مارکی که مادر ماری برایش به ارث گذاشته بود در عرض یک ماه تمام شد و من احساس می کردم که آن را با حساب و عاقلانه خرج کرده ایم ما نزدیک ایستگاه راه آهن ارنفیلد زندگی می کردیم از پنجره اتاقمان دیوار آجری رنگ راه آهن پیدا بود ما در کل در محله ارنفیلد در یک پانسیون زندگی می کردیم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 صدایی که قلب را تکان میداد و مرا به یاد امکانات و رفاهی که در خانه داشتیم میانداخت. از پنجره حمام تشتهای مسی رخت‌شویی و بند رختها دیده میشد و در تاریکی صدای زمین خوردن قوطی حلوی خالی یا پاکتی پر از آشغال را میشنیدیم که یک نفر دزدکی از پنجره توی حیات انداخته بود من بیشتر وقتها توی واندراز میکشیدم و سرودهای مذهبی را زمزمه میکردم. تا اینکه صاحبخانه اول خواندن و بعد حمام کردن را قدقم کرد مردم خیال میکنند من به یک کشیش فراری جا داده ام به نظر او من زیاد حمام میکردم و در حمام را به رویم بست او گاه با یک میله آهنی پاکت آشغالی را که توی حیات انداخته بودند به هم میزد تا از محتویات آن صاحبش را شناسایی کند پوست پیاز، فیلتر قهوه و استخوان، مدارک نارسایی بودند که با کمک تحقیق در دکان قصابی و سبزی فروشی تکمیل می شدند. ولی این پرونده ها همیشه ناتمام می ماند و او هیچگاه نمی توانست میان زباله ها و ساکنین خانه ارتباطی پیدا کند تهدیدهای او عمومی بود و طوری تهدید میکرد که هر کس فکر می کرد روی صحبت با اوست. هیچکس هیچ کس نمی مرا گول بزند من میدانم کار کی ما صبح همیشه لب پنجره مینشستیم و گوش به زنگ رسیدن چی بودیم که گاهی برای من از طرف دوستان ماری، لئو و آنا بسته هایی می آورد و به فواصل نامنظم چکهایی از پدر بزرگ. از پدر و مادرم فقط این گونه هایی می رسید که سرنوشتم را در دست هایم بگیرم و با نیروی خود بر این فلاکت پیروز شوم. بعدها مادرم حتی نوشت که مرا ترت ترد کرده است، او میتواند تا سرحد حماقت بی سلیق کند. زیرا این اصطلاح را از رومانی از شنیتلر به نام قلب سر دورایی گرفته بود. در این رمان دختری از طرف پدر و مادرش ترد می شود چون از به دنیا آوردن بچه سر باز می میزند که یک هنرمند اصیل ولی ضعیف به گمانم یک هنرپیشه برایش کاشته است. مادرم جمله ای را کلمه به کلمه از فصل هشتم رمان نقل کرده بود. وجدانم به من امر می کند تا را ترد کنم. او تشخیص داده بود که جای استفاده از این نقل و قول اینجاست در هر صورت او مرا ترد کرد من حتم دارم این کار را فقط به این خاطر کرد که تنها راهی بود که وجدان و حساب بانکیش را از گزند در امان نگه می داشت. در خانه ما انتظار داشتند که من چون یک قهرمان زندگی سختی داشته باشم در کارخانه یا ساختمانی مشغول به کار شوم تا بتوانم نان معشوقم را در بیاورم و وقتی من این کار را نکردم همه دل سرد و ناامید شدند حتی لئو و آنا این احساسشان را روشن به زبان آوردند آنها دوست داشتن مرا در وضعیتی ببینند که کله سهر با ساندویچ و کیف سر کار بروم. از خیابان بوسهی برای ماری بفرستم و شبها خسته ولی راضی به خانه برگردم. روزنامه بخونم و ماری را در حالی که بافتنی میبافد تماشا کنم. ولی من کمترین تلاشی برای تحقق تصورات آنها نمی کردم. من تمام روز در کنار ماری میماندم. وقتی پیش ماری بودم او بسیار مهربان و دوست داشتنی تر بود. من خودم را هنرمند می دانستم. خیلی بیش از آن چه بعدها احساس می کردم و ما به تصورات ای که از زندگی بی غیدوبند هنرمندانه داشتیم جامعه عمل می پوشندیم. از جمله با آویزان کردن شیشه های شراب کیسه های کتانی و پوست درخت به دیوار من هنوز هم وقتی به آن زمان فکر میکنم کنم از رقتنگیزی ماجرا خجالت میکشم. وقتی ماری آخر هفته پیش صاحبخانه میرفت تا برای پرداخت کرایه خانه مهلت بگیرد صاحبخانه هر بار جنجال به پا میکرد و میپرسید: چرا من کار نمی کنم و ماری با صدایی پر حرارت می گفت شوهر من یک هنرمند است بله یک هنرمند. یک بار شنیدم که از روی پله کثیف به سمت در باز اتاق صاحبخانه فریاد میزند بله هنرمند و صاحبخانه با صدای گرفته جواب داد چی هنرمند؟ شوهرتان هنرمند است پس خوشا به حال دفتر ازدواج صاحبخانه بیش از هم از این موضوع اوحت میشد که ما تا ساعت ده یازده توی یه رخت خواب می ماندیم. او آنقدر شعور نداشت که بفهمت ما برای صرف جوی در برق و یک وعده غذا تا آن ساعت می و نمیدانست که من تازه حدود ساعت دوازده بود که میتوانستم برای تمرین به سالن کوچک کلیسا بروم چون صبحها همیشه یک خبری در سالن بود جلسه راهنمایی برای مادران درس مذهبی کلاس آشپزی یا جلسه مشاوره یک شرکت تعاونی کاتولیکی ما نزدیک کلیسا کلیسای زندگی میکردیم که هایریش ریش بلند در آن بر دست کشیش بود و او این سالن را با سن کوچکش برای تمرین من دست و پا کرده بود. اتاق پانسیون را هم او پیدا کرده بود. آن وقتها رفتار خیلی از کاتولیکا با ما دوستانه بود زنی که معلم آشپزی خانه کشیشان بود همیشه به ما غذا میداد غذاهای های باقی مانده را که اغلب سوپ و دسر و سرگاهایی هم گوشت بود و هر وقت ماری برای تمیز کردن به او کمک میکرد. یک بسته کره یا یک پاکت شکر توی کیفش میگذاشت او زمانی که من شروع به تمرین میکردم آنجا می ماند. از خنده ریسه میرفت و بعد از ظهرها برای ما قهوه درست میکرد وقتی هم فهمید که ما عروسی نکرده این محبتش نسبت به ما کم نشد گمانم تصوری از اینکه هنرمندان هم میتوانند درست عروسی کنند نداشت بعضی از روزها که هوا سرد بود زودتر آنجا میرفتیم. ماری در کلاس آشپزی شرکت می کرد و من در رختکن کنار یک بخاری کوچک می نشستم و کتاب می خاندم. از پشت دیوار نازکی که سالون را از رختکن جدا می کرد, ابتدا صدای صحبت و خنده شاگردان به گوش می رسید و بعد هم که کلاس جدی می شد، صحبت از کالری، ویتامین و مقدار لازم از هر چیز برای درست کردن غذا بود. روی هم رفته کلاس زنده و شادابی بود، وقتی جلسه راهنمایی مادران بود، ما اجازه نداشتیم پیش از تمام شدن کلاس به آنجا برویم. خانم دکتر جوانی که به مادران مشورت میداد بسیار دقیق بود. دقتش شکلی دوستانه و مخصوص به خود داشت. او به طرز وحشتناکی از گرد و خاکی که من هنگام جست و خیز روی صحنه بلند می میترسید. بعدها ادعا کرد که گرد و خاک تا روز بعد در هوا باقی می ماند و به بچه های شیرخار صدمه می زند و توانست حرفش را به کرسی بنشاند و ترتیبی داد که من 24 ساعت قبل از جلسه او حق تمرین نداشته باشم. حتی هاینریش ریش بلن با کشیش سر این موضوع حرفش شد. کشیش نمیدانست که من هر روز آنجا تمرین می کنم و از هاینریش ریش خواست که در نوع دوستی زیاده روی نکند، گاهی هم با ماری به کلیسا میرفتم آنجا به شکل مطبوعی گرم بود، همیشه کنار هواکش بخاری می نشستم، سکوت مطلق بود، به نظر می رسید که فرسنگ ها از هیاهوی خیابان دور است، کلیسا به شکل مطبوعی خالی بود، فقط هفت یا هشت نفر آنجا بودند و من چند بار حس کردم که با این بازماندگان ساکت و غمگین که تأثیر قابل توجهی بر انسان می گذاشتند، ارتباطی تنگ و تنگ دارم به جز من و ماری بقیه پیرزن بودند و نحوه خشک و بیروح اجرای مراسمی که هاینریش بلن به جام می آورد با آن کلیسای تاریک و زشت هماهنگ بود من یک بار مجبور شدم به جای یکی از خادمین که نیامده بود و وظیفش بردن کتاب در پایان مراسم از راست به چپ بود کمک کنم ناگهان حس کردم که هاینریش دستپاچه شده و رشته حرف از دستش در رفته است من فورا دویدم و کتاب را از طرف راست برداشتم وقتی به وسط مهراب رسیدم زانو زدم و آن را به طرف چپ بردم اگر برای رهایی از این مخمسه به هایریش کمک نمیکردم نهایت بیاادبی بود ماری سرخ شد هایریش لبخند زد ما یکدیگر را از مدتتا پیش می شناختیم او از من بزرگتر و در مدرسه شبان روزی کاپیتان تیم فوتبال بود گاهی پس از ی مراسم بیرون در منتظر هایریش می ماندیم او ما را به صبحانه دعوت می کرد از یک دکان خاربار فروشی تخم مرغ ژبون، قهوه و سیگار نسیه می خرید و وقتی زنی که خانهش را اداره می کرد مریض بود مثل یک بچه احساس خوشبختی میکرد. به همه یانهایی که به من و ماری کمک کردند فکر میکردم در حالی که پدر و مادرم در خانه روی میلیون مارک پول گوی چمبات زده بودند و با تارت کردن من از اصول اخلاقیشان لذت می باردند. پدرم هنوز پشت مبلش این طرف و آن طرف میرفت و لبانش را در حال محاسبه میجنباند در این فکر بودم که از پولی که خواسته بودم بگذرم ولی به نوعی این پول را حق خودم میدانستم و با یک مارکی که در جیب داشتم نمیخواستم قهرمان بازی در بیاورم چون حتما از آن پشیمان شدم. واقعا به پول نیاز داشتم به شدت محتاج بودم و پدرم از وقتی اش را ترک کرده بودم یک فنینگ هم به من نداده بود لئو تمام پول تو توجیبیاش را به ما میداد آنا گاهی نان سفیدی را که خودش پخته بود برای من میفرستاد. بعدها حتی پدر بزرگ گاه گاهی برای من پول میفرستاد. چک هایی به مبلغ پانزده و بیست مارک. یک بار هم به علتی که هرگز نتوانستم کشف کنم. یک چک عجیب و غریب به مبلغ بیست و دو مارک. هر بار جنجال وحشتناکی سر این چک ها به پا می شود. این چک ها را فقط می به حساب گذاشت. صاحب خانه حساب بانکی نداشت. هم همینطور. او هم مثل ما به این نوع چک وارد نبود. اولین چک را به حساب کشیش مسئول خیریه کلیسای کاتولیک خواباند و بعد از بانک نو و علت صدور این نوع چک ها را جویا شد. نزد کشیش رفت و از او خواهش کرد چکی در بچه حامل به مبلغ پانزده مارک به او بدهد. ولی کشیش از شدت خشم نزدیک بود بترکت. برای هاینریش ریش توضیح داد که نمی به او چک در وچه حامل بدهد چون باید علت آن را بنویسد و یک چنین حساب خیریهی به طرز وحشتناکی کنترل می شد و اگر بنویسد برای همراهی به دستیار کشیش بلن در مقابل چک شخصی موجب اختلاف خواهد شد. هرچه باشد یک حساب خیریه محل رد و بدل شدن چک هایی با مبدع تاریک نیست، و می میتواند این چک را به عنوان کمک به خیریه قبول کند آن هم به عنوان کمک بلا از طرف شنیر به شنیر و مبلغ آن را نقدان به من بپردازد این کار شده نیست گرچه از لحاظ اخلاقی درست نیست ده روز تمام طول کشید تا پانزده مارک به دستم رسید چون های ریش هزار کار دیگر هم داشت و نمیتوانست تمام وقتش را صرف وصول چک بکند از آن به بعد هر بار که چکی غیر نقدی از پدر بزرگ میرسید وحشت میکردم آنچه چه به دستم می رسید، هم پول بود هم نبود. هرچه بود چیزی که ما واقعا لازم داشتیم نبود. پول نقد. سرانجام های ریش برای خودش یک حساب باز کرد که بتواند در ازای این چکهای غیر نقدی پول نقد به ما بدهد. ولی او اغلب به مسافرت می رفت و سه چهار روز نبود. یک بار سه هفته به مرخصی رفت. همان موقعی که چک بیست و رسید و من ناچار دست به دامن تنها رفیق جوانی شدم، ادگار وینکن. به گمانم او سخنگوی فرهنگی حزب سوسیال دموکرات بود. آدرس او را در دفتر تلفن پیدا کردم ولی پولی که بتوانم به او تلفن کنم در جیبم نبود. پیاده از ارنفرد به محله کارک رفتم. خانه نبود تا ساعت هشت توی خیابان ماندم چون صاحب خانه حاضر نشد مرا را راه بدهد. او نزدیک یک کلیسای بسیار بزرگ و بی تاریک زندگی می کرد در خیابان انگلس، من تا به امروز هم نمیدانم چون عضو حزب سوسیال دموکرات بود خودش را موظف میدانست در خیابان انگلس زندگی کند یا نه. دخلم آمده بود. حسابی خسته و گرسنه بودم. حتی سیگار هم نداشتم و میدانستم ماری نگران و ترسیده در خانه منتظر من است. محله کالک کلن، خیابان انگلس، نزدیک کارخانه شیمیایی. اینها مناظر شفابخشی برای یک مالی خولیایی نیست. سرانجام به یک دکان نانوایی رفتم و از زنی که پشت پیشخان ایستاده بود خواهش کردم یک نان کوچک به من ببخشد. زن جوان بود ولی به نظر بیچاره می آمد. منتظر لحظه شدم که دکان خالی باشد. داخل شدم و بدون اینکه سلام کنم گفتم یک نان کوچک به من ببخشید. میترسیدم در این فاصله کسی وارد مغازه شود. فروشنده نگاهی به من انداخت. لبای نانزکش نازکتر، و سپس گرد شد و به هم رسید بعد بدون اینکه کلمه ای بگوید نان کوچک و یک تکه کیک توی پاکت انداخت به من داد گمان نمیکنم وقتی بیرون می زدم تشکر کرده باشم جلوی در خانه ای که ادگار آنجا زندگی میکرد نشستم و نان ها و کیک را خوردم و گاهی دست در جیب می کردم تا از وجود چک بیست و دمارکی پدر بزرگ مطمئن شوم. دو مارک رقم عجیبی بود در این فکر بودم که چطور به فکر فرستادن چنین مبلغی افتاده شاید باقی یک حساب بود شاید هم میخواست سر به سرم بگذارد شاید هم اتفاقی و بدون هیچ منظوری آن را فرستاده بود ولی عجیب این بود که 22 را هم به عدد و هم به حروف روی چک نوشته بود شک ندارم پدر بزرگ دلیلی برای این کار داشت ولی من هرگز نتوانستم دلیلش را کشف کنم. بعدا متوجه شدم که فقط یک ساعت و نیم در کالک، خیابان انگلز منتظر ادگار مانده بودم و این به نظرم مثل ابدیتی وحشت انگیز آمده بود خانه های تیره و بخارهای های کارخانه شیمیایی ادگار از اینکه م رو دوباره میدید خوشحال بود و چهرش از شادی برق میزد روی شانهم زد و من رو به اتاقش برد در اتاقش عکسی بزرگ از برشت به دیوار زده بود زیر آن یک گیتار و تعداد زیادی کتاب جیبی روی قفسه‌ای که خودش سر هم کرده بود قرار داشت. صدای او را از بیرون شنیدم که بزنک صاحبخانه میگفت چرا مرا به اتاق راه نداده است. بعد با عرق به اتاق آمد و با قیافه‌ی بشاش برایم تعریف کرد که چطور همین امروز در کمیسیون تئاتر جنگی را علیه سگهای بوگندوی حزب دموکرات مسیحی برده است. از من خواست هرچی بعد از آخرین باری که همدیگر را دیده این بر سر هم آمده مو به مو برایش تعریف کنم. مادر بچگی همبازی بودیم. پدرش ابتدا سرپرست استخر بود و بعد از آن نگهبان زمین ورزشی شد که در نزدیکی خانه ما قرار داشت. از او خواهش کردم از شرح ما معافم کند. به طور مختصر وضعم را برایش روشن کردم و خواهش کردم چه که پدر بزرگ را نقد کند. او خیلی با محبت بود. وضعیتم را درک کرد و بلافاصله سی مارک پول نقد به من داد و نمی‌خواست چک را هم قبول کند با التماس چک را به او دادم به گمانم نزدیک بود گریه هم بگیرد چک را با کمی ناراحتی گرفت دعوتش کردم به دیدن ما بیاید و تمرینم را تماشا کند مرا تا ایستگاه تراموای نزدیک پستخانه کالک همراهی کرد ولی وقتی من یک تاکسی خالی توی میدان دیدم به طرفش دویدم و سوار شدم فقط توانستم چهره متعجب، ناراحت و بزرگ ادگار را ببینم. اولین باری بود که به خودم اجازه می دادم تاکسی سوار تاکسی شوم. واقعا مستقه سوار شدن تاکسی بودم. نمی توانستم با ترانوا تمام کلن را بگردم و یک ساعت دیگر در انتظار دیدن ماری بمانم. حدود هشت مارک پول تاکسی شد و من پنجاه فنینگ هم انعام دادم و به سرعت از پله های پانسیون بالا رفتم. ماری گریان از گردنم آویزان شد. من هم گریه کردم. هر دوی ما نگرانی کشیده و به خاطر هم ترسیده بودیم. گویا زمان درازی از هم دور بودیم و هر دو چنان ناامید بودیم که نمی توانستیم یکدیگر را ببوسیم. فقط در هم نجوا می کردیم. ماری در گوشم می گفت: هرگز، هرگز از تو جدا نمی تا مرگ ما را از هم جدا کند. بعد ماری آنطور که خودش می گفت کارهایش را کرد. بزک کرد، به لبهایش ماتیک مالید و ما به یکی از دکانهای خیابان ونلور رفتیم. هر کدام دو پرس گولاش خوردیم و یک بطری شراب قرمز خریدیم و به خانه برگشتیم. ادگار هیچ وقت تاکسی سواریه مرا نبخشید بعد از آن شب اغلب او را می دیدیم. او حتی وقتی ماری بچه انداخت، به ما کمک مالی کرد و هرگز یک کلمه درباره تاکسی سوار شدنم حرف نزد ولی این کار او را بدبین کرده بود بدبینی که اثرش تا به امروز هم باقی است پدرم با صدایی بلند و لحنی که برایم تازگی داشت گفت: خدای من بلند و واضح حرف بزن چشمهایت را هم باز کن دیگر نمی توانی گولم بزنی چشمانم را باز کردم نگاهش کردم عصبانی بود پرسیدم. مگر من حرفی زدم گفت بله تو دائم زیر لب غر میزنی ولی تنها کلمه ای که میفهمم های گوهی است که هر وقت یک بار میگویی گفتم راستش را بخواهی این تنها کلمه‌ای است که میتوانی بفهمی گفت کلمه چک را هم شنیدم گفتم بله بله منشین و به من بگو چه مبلغی را برای کمک ماهیانه به من در نظر داری به سوی رفتم شانههایش را به نرمی گرفتم و او را توی مبل فرو کردم سری بلند شد، ما رو در رو و نزدیک به هم ایستاده بودیم، آهسته گفت، موضوع را از جهات مختلف بررسی کردم، اگر تو شرط مرا را که تحصیل منظم و تحت کنترل از قبول نکنی و بخواهی اینجا کار کنی، باید چطور بگویم، فکر کردم دویست مارک در ماه باید کافی باشد من حتم داشتم که او میخواست دویست و پنجاه یا سیصد مارک بگوید ولی در آخرین لحظه گفت دویست مارک. ولی به نظر از غیافهی من ترسید و سریتر از آنچه به ظاهر آراستش میخورد گفت. گنه هولم در این باره میگفت که اساس پانتومیم ریاضت، پرهیز و صرف است. من سکوت کرده بودم و با چشمان ویروه یک عروسک خیم به او نگاه میکردم. حتی خشمگین هم نبودم. فقط تعجب کرده بودم و با چشمانی بیروح کاری که با زحمت زیاد یادش گرفته بودم خیره نگاهش میکردم. از این کارم عصبی شده بود. دانه های ریز عرق را بر لب بالایش میدیدم. اولین واکنش من در جواب پدرم نه خشم بود، نه نارضایتی و نه نفرت. چشمان بیروحم پر از احساس ترحم و دلسوزی بود. آهسته گفتم، باپای عزیز، دیویست مارک آنقدرها هم که تصور میکنی کم نیست، مبلغ جالب توجهی است، ولی من نمیخواهم در این باره با تو دعوا کنم، اما دست کم این را بدان که ریاضت، آن ریاضتی که گنه میگوید چیز پرخرج است، چون مقصود او ریاضت نیست بلکه پریز غذایی است، گوشت کمچرب و سالاد. البته ارزانترین نوع ریاضت گرسنگی است ولی باز هم یک دلغک گرسنه بهتر از یک دلغک مست است. عقب رفتم. برایم ناراحت کننده بود که به این نزدیکی در مقابلش بیستم و ببینم دانه های عرق بالای لبش دروشتر می شود. گفتم گوش کن بیا همونطور که در شعن جنتلمن هست، دیگر درباره پول حرف نزنیم. بیا حرف دیگری بزنیم. ناامیدانه گفت ولی من واقعا میخواهم به تو کمک کنم با کمال میل حاضرم سی ست به تو بدم گفتم دلم نمیخواد دیگر حرفی از پول بشنوم. میخواهم برای تعریف کنم که شگفتآورترین تجربه دوران کودکیم چه بود پرسید چه بود؟ جوری به من نگاه میکرد که گویی محکومی زیر حکم اعدام است شاید فکر میکرد میخواهم از معشوقش حرف بزنم که در گودسپرگ برایش یک ویلا خریده بود گفتم آرام باش آرام باش تعجب خواهی کرد عجیبترین تجربه دوران کودکی من این بود که ما هیچ وقت در خانه به اندازه کافی غذا برای خوردن نداشتیم وقتی کلمه خوردن را گفتم چندشش شد سکسکه کرد و بعد در حالی که میغرید. خنده ای کرد و پرسید منظورت این است که شماها هیچ وقت سیر نمی شدید؟ به آرامی گفتم درست همین را می خواستم بگویم ما هیچگاه حسابی سیر نمی شدیم لاغل وقتی که خانه بودیم من هنوز هم نمیدانم که دلیل این کار چه بود به خاطر اصول بود یا خصت البته امیدوارم که از روی خصاست بوده باشد تو میدانی که وقتی یک بچه تمام بعد از ظهر را دوچرخه سواری کند، فوتبال بازی کند، در رود راین شنا کند چه احساسی دارد؟ به سردی گفت، گمان میکنم اشتها گفتم، گرسنگی ما بچه ها این را میدانستیم که خانواده ثروتمندی هستیم، خیلی ثروتمند ولی این پول هیچ سودی برای ما نداشت. ما حتی یک غذای حسابی هم نمیخوردیم. گفت، مگر کم و کسری داشتید؟ گفتم، بله. غذا ما حتی پول توجیبی هم نمیگرفتیم. میدانی در آن سالات چه آرزویی داشتم وحشت زده گفت خدای من چی گفتم سیب زمینی ولی مادر از همون موقع مرض لاغر شدن داشت خودت که می دانی. او همیشه از زمان خودت جلوتر بود و همیشه خانه ما پر از عروجیف باف بود که هر کدام نظریه خاصی درباره لاغری داشتند که متاسفانه در هیچ کدام آنها سیب زمینی نقش مثبتی بازی نمیکرد وقتی شماها خانه نبودید مستختمینی که در آشپزخانه کار میکردند برای خودشان سیب زمینی میپختند سیب زمینی با کره و نمک و پیاز و گاهی ما از خواب بیدار میکردند و اجازه میدادند با پیژامه پایین بیاییم و به شرط رازداری شکمی از اذا بیاوریم اگر جمعه ها به خانه وینکن می رفتیم آنها همیشه سالاد سیب زمینی داشتند و خانم وینکن به خصوص بشخاب ما را پر می کرد. غیر از آن توی خانه همیشه سبد نان خالی بود سبد لعنتی همیشه خالی بود و جز تک نان نیم خوشک رژیمی مادر چیزی در آن نبود وقتی به خانه وینکن می رفتم و ادگار با نان تازه به خانه می آمد. مادرش با دست چپ نان را جلوی سینهش می گرفت و با دست راست آن را می و به ما می داد. ما بارش های نان را میگرفتیم و رویش پوره سیب زمینی می مالیدیم و با قشته گاز میزدیم. پدرم بدرم مات و مبهود تنها سرش را تکان میداد. پاکت سیگار را جلویش گرفتم یکی برداشت وقتی برایش کبریت زدم دلم به حالش سوخت برای یک پدر باید سخت باشد که با پسری که تقریبا 28 سال از سنش میگذرد برای اولین بار درسته حسابی حرف بزند. گفتم: و هزار چیز دیگر، مثلا آداممس یا بادکنک مادر بادکنک را پول دور ریختن می دانست. درست است بادکنک خریدن اصراف است ولی این خواسته کوچک ما که نمی توانست میلیون ها مارک گوهی شما را بادکنک کند و به هوا بفرستد. و درباره آن آبنبات های ارزان قیمت همین را بگویم که مادر سعی می کرد بازرنگی خاص خودش و تئوری ترساندن ثابت کند که سم می خالصند. <تصفح> چرا به جای آن آبنبات های سمی به ما آبنبات های بهتری نمیداد تنها خریدنش ممنوع بود. در مدرسه شبان روزی همه از این که من تنها کسی بودم که هر غذایی را بدون غور زدن میخوردم و تنها کسی بودم که همیشه از غذا تعریف میکرد و چیزی در بشقابش نمیمان تعجب میکردند. پدر بیرمغ گفت میبینیم این سختگیری دست کم این فایده را داشته که خوب و قانه بار آمدی و پیش مردم سربلند بودی. به چیزی که گفت اعتقاد نداشت و به هیچ وجه رضایتش را نمیرسند گفتم موافقم جنبه آموزشی این نوتربیت برایم روشن است ولی واقعیت این است که مغوله هایی چون تعلیم و تربیت، روانشناسی، شیمی و مانند آن تنها نظریههایی خشک و انتظایی بودند که برای ما چیزی جز گرسنگی نداشت وقتی پیش وینکنها بودیم می دانستم که پول تو جیبی بچه ها را جمعه ها می دهند. شنایویندها و هولراتها هم پول توجیبی را اول یا پانزدهم هر ماه میدادند تازه بچه ها یک چیز اضافی هم میگرفتند هر نفر یک برش کلوفت کالباس یا کیک خانم وینکن همیشه صبح جمعه به آرایشگاه میرفت چون سر شب به قول تو ونوس قربانی میشد پدرم فریاد زد چی این است که اما حرفش رو ادامه نداد سرخ شد و در حالی که سرش را تکان میداد به من نگاه کرد گفتم چرا منظورم دقیقا همون بود؟ آنها بعد از ظهر جمعه بچه ها را به سینما میفرستادند و اجازه داشتند قبل از سینما بستنی بخورند و وقتی مادر از آرایشگاه و پدر با حقوق هفتگیش در جیب به خانه میآدند دستکم سه ساعت و نیم تنها بودند خودت که میدانی خانه های کارگری زیاد بزرگ نیست. پدرم گفت: یعنی شما هاب می چرا بچه ها را به سینما میفرستند؟ گفتم دقیقا نمیدانستیم بعدها که فکر کردم به فکرم رسید و خیلی دیرتر فهمیدم چرا وقتی از سینما برمیگشتیم و سالاد سیب زمینی میخوردیم خانم وینکن صورتش سرخ میشد. بعدها وقتی آقای وینکن سرپرست زمین ورزشی نزدیک خانه ما شد، اوضاع فرق کرد. او وقت بیشتری در خانه بود. وقتی پسر بچه بودم همیشه میفهمیدم که حضور ما به نوعی برایشان ناراحت کننده است ولی بعدها فهمیدم چرا چون در یک آپارتمان کوچک با یک اتاق و یک آشپزخانه و سه بچه آنها چاره دیگری نداشتند برای پدرم چنان تکان دهنده بود که ترسیدم این موضوع را بی سلیغگی بداند و دوباره بحث را بر سر پول برگرداند ملاقاتمان برایش دردآور بود اما نهایت سعیش را می‌کرد که به این درد به چشم یک نجیب زاده نگاه کند و از آن لذت ببرد اگر این موضوع می شد سخت بود بتوانم او را دوباره سر صحبت 300 مارک کمک ماهانه بکشانم. داستان پول برای او مانند داستان طلب جسمانی برای کشیشان بود. هیچکس درست و حسابی دربارهش می میزد و نه فکر میکرد. آنطور که ماری درباره طلب جسمانی کشیشان گفته بود یا باید آن را موضوعی متعالی حساب میکردی یا یک چیز پست. اما هرچه بود ربطی به آنچه در همان لحظه بود نداشت. غذا تاکسی یک پاکت سیگار یا اتاقی با حمام پدرم درد میکشید این آشکار و تکان دهنده بود رویش را به پنجره کرد و با دستمالی که از جیبش بیرون آورد چند قطر اشکی را که در چشمانش هدقه زده بود پاک کرد من تا به حال نه گریه او را دیده بودم نه اینکه از دستمالهایش استفاده کند هر روز صبح دو دستمال تمیز بر می داشت و شب آنها را در حالی که تنها کمی چروک خورده بودند توی سبد رخت چرک های هم ما میانداخت. بدون اینکه از آنها استفاده ای کرده باشد. زمانی مادرم برای صرف جویی چون پودر رخشوی کمیاب بود با او جر رو بحث می کرد که آیا نمیتواند دست را دست کم دو سه روز همراه داشته باشد؟ تو فقط آنها را با خودت میبری هیچ وقت کثیف نمیشون هرچه باشد انسان نسبت به اجتماع وظایفی دارد. <تصفيق> و با استفاده از این کلمات میخواست خودش را طرفدار شعارهای مبارزه علیه اصراف و مبارزه علیه فساد نشان دهد تا آنجا که به یاد دارم پدر تنها یک بار از کور در رفت و از سر حرفش که باید هر روز صبح دو دست مال تمیز به او بدهند ماند هرگز ندیده بودم که پدر به خاطر آب یا گرد و غبار مجبور به پاک کردن بینیش با دستمال شود و حالا کنار پنجره ایستاده بود و نه تنها اشک بلکه قطرات کوچک عرق را هم از بالای لبش پاک می کرد. به آشپزخانه رفتم چون او هنوز گریه میکرد کرد. صدای حق ضعیفی را می شنیدم. وقتی کسی عشق می ریزد نمی حضور هیچ کس را کنار خود تحمل کند و من به عنوان پسری که او را به سختی می شناخت حضور خودم را درست نمی من فقط در حضور یک نفر می توانستم گریه کنم ماری نمیدانستم که معشوقه پدرم هم از جنسی بود که او بتواند در حضورش گریه کند یا نه او را فقط یک بار دیده بودم او دوست داشتنی زیبا و به طرزی مطبوع احمق بود ولی زیاد درباره اش شنیده بودم غم و خیش ما او را پول دوست می دانستند، البته آنها هر کسی را که به خود جرأت می داد بگوید که انسان گاهی نیاز به غذا و نوشیدنی و کفش دارد، پول دوست می دانستند. کسی که سیگار، حمام گرم، گل و مشروب را جزو ملزومات زندگی بداند، از هر جهت این شانس را داشت که نامش به عنوان دیوانه اصرافگر در تاریخ ثبت شود، پیش خودم تصور می کردم که معشوقه پدر آدم پرخرجی است که دائم در حال خریدن جوراب و لباس است و کرایه خانه‌اش باید سر وقت پرداخت شود او باید خوشرو و خوش اخلاق هم باشد و این ممکن نیست مگر اینکه به قول پدر توازن کامل موقعیت مالی برقرار باشد وقتی پدر پس از پایان جلسات خسته کننده یه نظارت پیش او می رفت، او باید بشاش و سرزنده باشد، بوی خوش بدهد و موهایش را پیش آرایش کرد درست کرده باشد. نمی توانستم او را فرد پول پرستی بدانم، او شاید ولخرج بود و ولخرجی نزد قوم و ما معنای پول پرستی داشت. وقتی انکلس باغبان پیر ما که گاهی به شوفر هم کمک می کرد ناگهان با فروتنی شگفتاوری اشاره کرد که تعرفه کارگر کمکی در واقع از سال قبل بسیار بالاتر از مزدی است که از ما می گیرد، مادر با صدای زیرش یک سخنرانی دو ساعته در پول دوستی بعضی اشخاص ایراد کرد او یک بار به پستچی 25 فنینگ ای داد و وقتی صبح روز بعد 25 فنینگ را همراه یک یادداشت در پاکتی در صندوق پست یافت، نفرت وجودش را فرا گرفت. پستچی نوشته بود: "خانم محترم، من راضی به قارت شما نیستم." طبیعی است که او یک مدیر کل را در وزارت پست شناخت که از یک آدم پول دوست بیادب شکایت کند. به سرعت قهوی را که کف آشپزخانه ریخته بود دور زدم و از راه رو به حمام رفتم و در پوش لاستیکی وان را کشیدم یادم آمد که بعد از سالها بدون خواندن سرودهای مذهبی حمام کردم. در حالی که با دوش دستی بقایای کفی را که به دیواره وان چسبیده بود میشستم آرام شروع به زمزمه کردن سرودی مذهبی کردم همین طور سعی کردم مرثیه لورطو را بخوانم من همیشه این دخترک یهودی مریم را دوست داشتم و به نوعی به او ایمان آورده بودم ولی حتی مرسی یه لورتو هم کمکی نکرد چون زیادی کاتولیکی بود و من از مذهب کاتولیک و کاتولیک ها بدجوری عصبانی بودم تصمیم گرفتم به هاینریش بلن و کارل امونز تلفن کنم با کارل امونز از دو سال قبل که آن دعوای وحشتناک را با هم کردیم صحبت نکرده بودم حتی نامه هم برای هم ننوشته بودیم دعوای ما دلیلی احمقانه داشت یک بار که کارل و زابینه به سینما رفته بودند و ماری هم در جلسات گروه شرکت کرده بود و من از کوچکترین پسرش گرگور یک سال مواظبت می کردم، تخم مرغ خام توی شیرش زده بودم زابینه به من گفته بود باید ساعت ده شیر را گرم کنم، توی شیشه بریزم و به گرگور بدهم و چون پسرش به نظرم رنگ پریده و ضعیف آمد، و حتی گریه نمی بلکه به شکلی همدردی دردی می نالید. فکر کردم بد نیست یک تخم مرغ خام توی شیرش بزنم. در حالی که شیر گرم می او را بغل گرفته بودم و در آشپزخانه به این طرف و آن طرف می بردم و با او حرف می زدم. تخم مرغ، چی به پسر کوچولومون بدیم؟ یک تخم مرغ کوچولوی خوشمزه و از این قبیل حرفا. بعد تخم مرغ را شکستم، توی مخلوط کن ریختم و با شیر گِرگوراتی کردم. بچه های دیگر کار خوابیده بودند. من با گرگر بدون اینکه کسی مزاحمت ایجاد کند توی آشپزخانه بودیم. وقتی شیشه را به او دادم به نظرم از تخم مرغ توی شیر خوشش آمد لبخند میزد و پس از خوردن آن بدون اینکه زیاد ناله کند خوابید وقتی کارل از سینما بازگشت و پوست تخم مرغ را توی آشپزخانه دید به اتاق نشیمن که من و زبینه آنجا نشسته بودیم آمد و گفت کار خوبی کردی که برای خودت تخم مرغ درست کردی گفتم تخم مرغ را خودم نخوردم آن را به گرگور دادم و ناگهان طوفانی وحشی به توفانی از ناسزا زابینه حسابی هیستریک شد و مرا قاتل خواند کار سرم فریاد زد دوره گرد بی سر و پا جنده پرست این حرف چنان مرا وحشی کرد که به او بی سواد بی شعور گفتم پلتو هم را برداشتم و خشمگین از آنجا دور شدم توی پلکان از پشت سرم فریاد زد بی سر و پای وظیفه نشناس و من فریاد زدم بی فرهنگ روانی چاپلوس بی شعور من بچه ها رو دوست دارم و میدانم چگونه با آنها رفتار کنم بخصوص با بچه های شیخار تصورش رو هم نمیکردم که تخم مرغ برای بچه یک سال مذر باشد از اینکه کارل به من جنده پرست گفته بود بیشتر از قاتل گفتن زابین رنجیدم. هرچه باشد آدم میتواند به یک مادر به حیجان آمده حق بدهد و او را ببخشد ولی کار خوب میدانست که من جنده پرست نیستم رابطه من و کارل به شکل احمقان بحرانی بود. او فکر میکرد زندگی من عالی و با شکوه است و من هرگز نتوانستم غانهش کنم زندگی من تا چقدر یک نواخت و کسل کننده است. سفر با قطار، هتل، تمرین، اجرا، منچ و آبجو. زندگی او به خصوص به خاطر خورد و برژوایی بودنش مرا جلب میکرد. او هم مثل بقیه فکر میکرد که ما بچه نمیخواهیم و بچه انداختنهای ماری برایش مشکوک بود. او نمیدانست ما چقدر دلمان بچه میخواهد. با وجود تمام اینها میخواستم تلگرافی برایش بفرستم و خواهش کنم به من تلفن کند ولی نمیخواستم از او پول بگیرم. او در این مدت صاحب چهار بچه شده بود و با درآمدی که داشت به سختی زندگی را میگذراند. یک بار دیگر وان را شستم. آهسته به راه رو رفتم و از در باز به اتاق نشی من سرک کشیدم. پدر رویش را سمت میز کرده بود و دیگر گریه نمیکرد. با بینی قرمز و گونه های پرچین و چروک نمناکش، چون پیر مردی ناشناس به نظر می آمد. لرزان از احساس سرما و به شکلی شگفتاور خالی و به نسبت احمق. برایش کمی کنیاک ریختم و گیلاسش را دستش دادم. گرفت و نوشید. حالت احمقانه صورت و درماندگی چشمانش هنوز باقی بود، گیلاسش را خالی کرد و آن را بدون به زبان آوردن کلمه‌ای با حالتی تذر آمیز جلوی چشمانم گرفت. چیزی احمقانه داشت که من هیچگاه در اون ندیده بودم. مثل کسی بود که دیگر به هیچ چیز علاقه ندارد و فقط رمان‌های پلیسی، مارکه به خصوصی از شراب، جکهای احمقانه توجهش را جلب می دستمال چروکیده و مرتوب را روی میز گذاشته بود. من در این کار او که برای پشت پازدن به آداب بود نشانی از لجبازی میدیدم. درست مثل بچه شیطانی که هزار بار به او گفته باشند دست مال را نباید روی میز گذاشت. کمی <متصفح> برایش ریختم نوشید و حرکتی کرد که میشد گونه تعبیرش کرد خواهش میکنم پالتوام هم را بیاور. <متصفح> من عکس عملی نشان ندادم. میخواستم یک بار دیگر موضوع پول را پیش بکشم ولی کاری جز اینکه سکه یک مارکی را از جیب در بیاورم و با آن کمی حرکات تر دستی کنم به خاطر نرسید سکه را روی دست راستم که به سمت او دراز کرده بودم به پایین غلطاندم و بعد به عکس به نظر این نمایش تاثیر در داوری روی او داشت سکه را بالا انداختم تقریبا تا نزدیک سقف و آن را گرفتم ولی او دوباره همان حالت را نشان داد خارج میکنم را بیاور یک بار دیگر سکه را به هوا انداختم با شست پای راستم آن را گرفتم و بالا آوردم و تقریبا زیر دماغش گرفتم ولی فقط حرکت ناراحت کننده ای کرد و قرشی تهدید آمیز که معنایش این بود نه دست از این کارهای احمقانه بردار در حالی که شانه هایم را بالا میانداختم به راهرو را را رفتم و پالتو و کلاهش را از جارختی برداشتم کنار من ایستاد در پوشیدن پالتو کمکش کردم و دست کشهایش را که روی زمین افتاده بود برداشتم و به دستش دادم. دوباره نزدیک بود به گریه بیفتد حرکات مزهکی با بینی و لبهایش کرد و زیر لب به من گفت نمیخوایی چیز دوستانهی به من بگویی آهسته گفتم چرا؟ ممنون که وقتی آن احمقا میخواستن مرا محکوم کنند دستت را روی شانم گذاشتی و لطف کردی وقتی آن افسر دیوانه میخواست خانم وینکن را تیرباران باران کند زندگیش را نجات دادی گفت آه، تمام اینها را فراموش کرده بودم گفتم اینکه که لطفت را فراموش کردی دلچسب است. ولی من آنها را فراموش نکردم به من خیره شده بود و با زبان بی زبانی التماس کرد که نام هنریت را به زبان نیاورم و من نام هنریت را به زبان نیاوردم با وجودی که قصد داشتم از او بپرسم چرا جلوی رفتن هنریت به یگان آتش ضد هوایی را نگرفت سرم را پایین انداختم و او فهمید که درباره هنریته صحبت نخواهم کرد شک ندارم که هر وقت پدرم در جلسات حیعت مدیر شرکت میکرد از روی بیحسلگی روی کاغذ گاهی یک هه و گاه یک هی دیگر و شاید حتی اسم را کامل می‌نوشت. هنریته او در مرگ هنریته مقصر نبود فقط به شکلی احمقان مرگش را پیش انداخته بود شاید هم حماقت او اساس این ناکامی و رنج بود پدرم ظریف لطیف با موهای نقره‌ای و شیک پوش بود اما در تمام مدتی که من و ماری در کالون بودیم یک بار هم برایمان پول نفرستاد چه چیز این مرد دوست داشتنی را پدرم را تا این حد سنگ دل و قوی می کرد چرا توی تلویزیون از وظایف اجتماعی، از آگاهی به وظایف شخصی در قبال دولت، از آلمان و حتی مسیحیت که اعتقادی به آن نداشت حرف میزد؟ آن هم به شکلی غانه کننده، ایمان و اعتقاد او فقط در پول خلاصه میشد. آن هم نه پولی که با آن بشود شیر خرید، تاکسی سوار شد، خرج معشوق ای را داد یا به سینما رفت بلکه پول در معنای مجردش، من از او می ترسیدم. او هم از من می ترسید. ما هر دو می‌دونستیم که هیچ کدام واقعی نیستیم و از آنهایی که از سیاست واقع واقع‌بینانه صحبت می‌کنند متنفریم. موضوع بر سر چیزی بالاتر از آن بود که این احمق‌ها بتوانند بفهمند. در چشمانش می‌خواندم او نمی‌توانست پولش را به دلغکی بدهد که فقط آن را خرج کند. درست عکس آن چیزی که او معتقد بود انسان باید با پول بکند و من میدانستم که اگر او یک میلیون هم به من بدهد آن را خرج می‌کنم. خرج کردن پول برای او معنای جز اصراف نداشت وقتی او را تنها گذاشته بودم تا گریه کند و در آشپزخانه و حمام منتظر بودم امید داشتم آنچنان منقلبش کرده باشم که بدون هیچ شرط ای مبلغ قابل توجهی به من بدهد ولی حالا در چشمانش میخاندم که توان این کار را ندارد واقعی نبود من هم همینطور ما هر دو میدانستیم که دیگران با وجود واقعبین بودنشان به نادانی عروسک های هستند که هزار بار دستشان را تا گردن بالا میآورند ولی نخی را که به آن آویزانند و تاب می‌خورند، خورند یکبار یک بار دیگر سرم را برای آرام کردنش پایین انداختم تا به او اطمینان بدم که نه از پول حرف خواهم زد و نه از هنریته اما هنریته از ذهنم نمی‌رفت. فکر کردم اگر او زنده بود سی و سه سال داشت و شاید از یک کارخانه دار طلاق گرفته بود. نمی توانستم تصور کنم که او بتواند با این ابتزال کنار بیاید. با این لاس زدن ها و پارتی ها و در این حال خود را معتقد به مبانی مسیحیت نشان دادن. یا اینکه در کمیته که مادرم مسئولش بود بنشیند و چرت و پرت بگوید و نسبت به اعضای حزب سوسیال دموکرات دوستانه رفتار کند تا بیش از این دوچار عقده حقارت نشوند او را زنی ناامید میدیدم که کارهایش به نظر واقبین به دلیل نداشتن قدرت تخیل طوری به نظر میرسد که انگار ادای یک نجیب زاده را در می آورد یا اشراف زاده ای بی فرهنگ است او می در یکی از پارتی های آنچنانی مشروبش را توی یقه یکی از بیشمار دارندگان عنوان ریاست پریزد یا با ماشینش توی دل مرسدس یکی از این شیادان دندان غروچ کند غیر خیر از این چه می توانست بکند؟ او استعداد نقاشی کشیدن داشت نمی‌خواست روی صفحه گردان کوزگری زرف کرخوری گلی درست کند اگر زنده بود مثل من از همان جایی که زندگی با برخورد به دیوار نامرئی پول به پایان می رسید از همان جایی که پول تنها نقشه ارقام ثبت شده در دفاتر کلیسه های کاتولیک را بازی می کند و خرج کردن آن گناه بود درست از همانجا زندگی را شروع می کرد راه را برای پدرم باز کردم دوباره عرق کرده بود دلم به حالش سوخت به اتاق دویدم و دستمال کثیف را از روی میز آوردم و توی جیب پالتواش چپندم. اگر مادرم هنگام شمارش ماهیانه رختها رخت متوجه می که یک دستمال کم است، اوضاع ناراحت کننده پیش می آمد و خدمت کاران را به دزدی یا شلختگی متهم می کرد. پرسیدم، میخواهی برایت تاکسی خبر کنم؟ گفت، نه، کمی پیاده می روم. شوفر نزدیک ایستگاه راه آهن منتظر است از کنارم گذشت در را باز کردم تا نزدیک آسانسور بدرقش کردم و دکمه را فشار دادم یک بار دیگر سکه یک مارکیم را از جیب بیرون آوردم آن را روی دست چپ دراز کردم گذاشتم و به آن نگاه کردم پدرم با تنفر سرش را تکان داد فکر کردم دست کم کیف پورش را بیرون می آورد و یک اسکناس پنجاه یا صد مارکی به من می دهد. ولی درد بزرگواری نجابت و وقوف به موقعیت دردناکش، او را به مرحله از اطلاع روحی کشانده بود که هر گونه فکری در پول پور برایش غیر قابل تعمل و کوشش های من برای یادآوری آن چون توهین به مقدسات بود در آسانسور را برایش بازنگه داشتم مرا در آغوش گرفت و ناگهان شروع به بو کشیدن کرد لبخند زد و گفت تو واقعا بوی احوه می دهی شد خیلی دادم میخواست خواست یک احوه خوب درست کنم این را خوب بلدم رهایم کرد و سوار آسانسور شد و من قبل از اینکه آسانسور حرکت کند دیدم که با لبخند مکارانهی که بر لب داشت دکمه را فشار داد همون ماندم و شماره ها را که یکی پس از دیگری روشن و خاموش می شدند نگاه کردم چهار سه دو یک بعد چراغ قرمز هم خمشت oh,